درود شنوندگان رادیو البورس خدمتون عرض ادب دارم و خوشحالم که یه روز دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. مهمترین عناوین خبری دانمارک در هفته گذشته رو با هم بررسی میکنیم وزیر امور مهاجرت دانمارک که به شدت ضد ها و مهاجران ساکن این کشور است، طی پستی فیسبوکی از مدیران مدارس آوس که از ثبت نام آموزان خارجی خودداری کردند، حمایت کرده و گفته مدیران این مدرسه ها حق دارند که اسبطنامه دانش آموزان خارجی به واسطه افشایش 80 درصدی آنها در مدرسه خودداری کنند. خلاصه این خانم توی همه جا حضور داره. علارغم ممنوع بودن هرگونه تبعیض نژادی در دانمارک مدیران مدرسه ای در آوز از اسبطنامه دانش آموزان خارجی تبار خودداری کردند. دامنه انتقادات جهانی از اعمال تبعیض نژادی در دانمارک این بار به مدرسه ها هم کشیده شده این موضوع با مخالفت گسترده سازمان های حقوق بشری داخل و خارج دانمارک روبرو شده. با این همه مسئولیان این مدرسه ها در گفتگو با رسانه‌ها گفتند که از هفت کلاس ابتدایی که دایر است پنجاه درصد دانش آموزان غیر هستند و دلیلی بر اعمال تبعیض نژادی وجود ندارد. یوگ دارد مدیر یکی از این مدارس، نیز با رد اتهام تبعیض نژادی گفت برای ادغام و جذب سریعتر دانش آموزان خارجی و اصل که در این مدرسه ها تحصیل می کنند از کمتر شدن درصد دانش آموزان دانمارکی جلوکی کردیم دلیل ثبت سبتنام دانش آموزان خارجی بیشتر این است که می خواهیم دستکن 50 درصد کلاس های ما رو دانش آموزان دانمارکی تشکیل بدن به گفته یوگا در درصد دانش آموزان خارجی کلاس اول ابتدایی در این مدرسه ها امسال به 80 درصد رسیده است در حالی که در سال 2007 تعداد دانش آموزان خارجی 25 درصد بود اظهارات این مدیر مدرسه در حالی است که بر اساس بخشنامه تازه دولت دولت تمامی شهرداری های دانمارک موظف است موظف از برگزاری کلاس های مخصوص دانش آموزان دو زبانه خودداری کنند و دانش آموزان خارجی باید از همان ابتدا بر سر کلاس های بروند که دانش آموزان دانمارکی می روند. در سال جاری میلادی 10300 نفر از پول دادن به کلیسا انصراف دادند. شمار بی خدایان دانمارکی بیشتر شده است. تحقیقات صورت گرفته از سوی فعالین ضد مذهب در دانمارک نشان میدهد تعداد دانمارکی هایی که دیگر اعتقادی به خدا ندارند در این در کشور در سال 2016 دست کم 10300 نفر افشا شده است. این تعداد دانمارکی در حالی دیگر حاضر به پرداخت مالیات ویژه کلیسا نیستند که بررسی آماری نشان میدهد رقم 10300 نفر پس از سال 2007 بیشترین تعدادی است که کلیسا بر اساس آن حامیان خود را از دست میدهد برخی کارشناسان افزایش تبلیغات عمومی ضد دین و خدا ناباوری را دلیل اصلی ماجرا در دانمارک میدانند از بهار سال جاری میلادی تبلیغاتی از سوی حامیان کمپین مخالفت با کلیسا بر دیواره اتوبوس‌های در اون شهری منتشر شد که در آن از خوانندگان میپرسند آیا عیسی مسیح و محمد واقعاً با خدا حرف میزنند؟ در این تبلیغات همچین آمده است آیا به خدا ایمان داری چرا ایمان داشتن به خدا باید هزینه داشته باشد بر اساس اعلام رسمی منابع آماریا در دانمارک هر دانمارکی معتقد به کلیسا دست کم هزار کرون پول نق به صورت مالیات کلیسا در طول حیات و عمر خود به صندوق کلیسای جامعه این کشور واریز می کند با اینکه این مالیات اجباری نیست اما بسیار شهروندان دانمارکی حتی آنها که خدا ناباور هستند این مالیات را پرداخت می کنند. سعیدی مست که شیشه خودروی مردم را می دستگیر شد پلیس یولند شمالی از دستگیری یک طبعه سئدی به جرم شکستن شیشه خودروهای شهروندان شهر, شهر آلبرگ خبر میدهد به گفته مقامات پلیس این مرد سوئدی که سی سال سن دارد یک شب گذشته دست کم شیشه نه خودرو را شکسته است پلیس میگوید که وی هنگام دستگیری به طور وحشتناکی مس بوده بهترین و بدترین گوشی های موبایل برای استفاده در دانمارک و شمال اروپا اعلام شد. آیفون 6s بدترین تلفن و سامسونگ و HTC بهترین. یک تحقیق بین المللی و گسترده که توسط شرکت‌های مخابراتی دانمارک، فلاند، سوئد و نروژ انجام شده است، نشان میدهد که گوشی‌های تلفن همراه آیفون به ویژه آیفون 6s بدترین خدمات آنتن‌دهی در شمال اروپا را دارند. پروفسور پدرسن رئیس این کار تحقیقاتی که همزمان رئیس گروه ارتباط الکترونیکی دانشگاه آلبرگ دانمایک نیز هست در این بار گفته است برای بررسی و رسیدن به نتیجه قطعی بهترین و بدترین گوشی‌های همراه در شمار اروپا دست کم 26 برند جهانی در این صنعت را مورد ارزیابی و مطالعه قرار داده این پروفسور ارتباطی بهترین تلفن همراه برای مصرف در دانمارک و سایر کشورهای شمال اروپا را HTC 626، سامسونگ گلکسی S5 مینی و سامسونگ گلکسی JY می می‌داند. و باز خبری از وزیر مهاجرت دانمارک اینگرستر وزیر امور مهاجرت در امور در مورد تحصیلات خود دروغ گفته است. خانم استوربرگ وزیر امور مهاجرت در سوابق خود نوشته است که او از دانشگاه ویبرگ مدرک خبرنگاری دارد. در صورتی که این تحصیلات هیچ ارتباطی با خبرنگاری ندارد و او هرگز تحصیلات خبرنگاری نداشته و در مورد تحصیلات خود دروغ گفته است. بعد از فاش شدن این موضوع این چنین گفته که هر کسی می تواند خود را یک خبرنگار معرفی کند. هرچند که هرگز تحصیلات خبرنگاری نداشته باشد رئیس دانشگاه ویبورگ نیز میگوید ما هرگز به کسی تحصیلات خبرنگاری در این دانشگاه ندادیم و فقط در سه دانشگاه در دانماک این تحصیلات صورت میگیرد بعد از این تحقیقات خانم انگرسربک قول داده است که این مطلب که او یک خبرنگار است را رو از روی صفحه اطلاعاتی شخصی خود حذف کند مغازه مواد فروشی درست در جلوی مدرسه دانمارک بعد از شلیک‌های اخیر در منطقه کریسینا به دو پلیس و یک شهروند عادی و کشته شدن مهاجم توسط پلیس ساکنان منطقه مغازه مغازه‌های مواد فروشی خود را به طور اختیاری جمع کردند اما حالا یک مغازه مواد فروشی جدید درست در جلوی مدرسه دانمارک برپا شده است سیاستمداران در صدد هستند که با تصفیه قانونی فروش مواد مخدر مانند کشور هلند به دولت صورت بگیرد تا دست باندهای قاچاق و افزایش و احتیاط کاهش یابد دانمارک سه نفر را به اتهام پرتاب سنگ از روی پل بر روی خودروها در شهر آوس دستگیر کرد مقامات پلیس دانمارک اعلام کردند که در جریان پرتاب سنگ از روی پل بر روی خودروها در شهر آوس سه نفر را دستگیر کرده پلیس میگوید که این سه جوان 16 تا 20 ساله به اتهام پرتاب سنگ از روی یک پل بر روی خودرو، خودرو بازجوش شدند. 22 آگوست سال جاری، راننده خودروی سواری با همسر و فرزند خود در حال تردد در اتوبان e در حومه شهر اودنسه بود که بر اثر سقوط سنگ 30 کیلویی از بالای یک پل دچار حادثه شد. در پی این حادثه راننده خودرو که یک زن 33 ساله بود در دم جان باخت. پلیس بیشتری راجع به هدف این سه نفر از پرتاب سنگ بر روی خودروهای راه نداد چهارشنبه گذشته چهار خودرو در کوبنایک به آتش کشیده شد. به گزارش پلیس دانمارک، شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در شهر کوبنایک چهار خودرو تومه آتش شدند. به گفته سخنگوی پلیس در هفته گذشته بیش از 50 دستگاه خودرو به آتش کشیده شدند. های جوانان بحث بر سر سیاستهای دولت در زمینه جذب مهاجر. را دامن زده است احساب از این موقعیت‌ها استفاده نموده و خواهان کاهش و قطع کمک‌های نقدی به مهاجران و پناهندگان و نیز جلوگیری از مهاجرت غیر اروپاییان به دانمارک شدند و یک خبر از یک ایرانی موفق افتتاح نمایشگاه نقاشی در کپنهاگ توسط پناهجوی کرد نمایشگاه چند اثر تابلو نقاشی با موضوعات انسان و طبیعت کار ارسلان چلبی هنرمند پناهجوی کرد ایرانی است گفته می شود این نمایشگاه تا روز یکشنبه 11 سپتامبر برای بازدید عموم در کافه گالری کوپنهاگ دایر است. نمایشگاه آثار نقاشی ارسالان چلابی، هنرمند پناچو کرد ایرانی از روز چهارشنبه در کوپنهاگ افتتاح شد. این نمایشگاه تا 11 سپتامبر در محل کافه گالری در کوپنهاگ برپاس است. این پناجو هنرمند را حمایت کنید. و یک خبر از دیوان عالی دانمارک دیوان عالی دانمارک یک شهروند دانمارکی کرواسیایی را لغو کرد آقای جواسیک شهروند 28 ساله دانمارکی کروات تبار که تابعیت این کشور را در سالهای گذشته به دست آورده بود به اتهام درگیری، تهدید در اختیار داشتن سلاح و سرقت تابعیت دانمارکی خود را برای چهارمین مرتبه دست داد این شهروند کروات تبار دومی نفری می باشد که در تاریخ دانمارک شهروندی خود را از دست داده است و این متهم به سرقت از منزل و بانک نظاح دست جمعی، حمل سلاح گرم و درگیری در زندان می باشد همچنین وی در یک زندان یک زندانی را به قصد کش کتک زده سخنگوی پلیس گفت این شهروند دانمارکی کروات توار هم سه مرتبه دادگاه عالی خود را از دست داده بود و در حال حاضر به دلیل از دست دادن شهروندی دانمارک باید برای همیشه به کرواسی برای ادامه تحمل مدت زمان زندان عودت داده شود. افزایش نجات پرسی در دانمارک به روایت روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقام تئوری دانمارکیا خود را خوشبختترین شهروندان اتحادیه اروپا تصور کنند در تازه‌ترین نظرسنجی 97 درصد آنها چنین نظری داشتند، اما در عمل زندگی در این کشور اسکاندیناوی آری از تنش نیست روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت تازه‌ترین گزارش نهاد ناظر اروپایی نجات و بیگان ستیزی نشان می دهد. دانمارک شاهد افزایش نگرانی و سریع نجات پرستی می باشد دلیل این نتیجه حیرت آور مناقشه بر سر پناتشون و مهاجرابه باشد جدیدترین تحقیقات نشان داده شده در دانمارک نشان میدهد حدود نیمی از مردم این کشور از حضور پناهجویان مسلمان در کشورشان ابراز ناراضیتی کنند و خبری از دانشگاه آوس که یکی از برترین دانشگاه پزشکی در اروپا معرفی شد. هر سال بهترین دانشگاه جهان را بر اساس دیدگاه کارفرمایان و دانشگاهیان و تعداد مستندات پژوهشی و مقالات آکادمیک رتبه‌بندی میکنند. در رندهبندی امسال نیست چندین دانشگاه اروپایی در میان برترین ها قرار دارند که برخی از بر بهترین دانشکده های پزشکی جهان را در خود جای دارد که از جمله می توان دانشگاه آوس را نام برد. دانشگاه آوس در دانماش موفق نشد تا در سال گذشته بین 50 دانشگاه برتر قرار بگیرد و امسال نیز با اختلاف اندکی از این فرز جا مند. اما این دانشگاه همچنان در زمینه مستندات آکادمیک از امرکرد خوبی برخوردار است و به عنوان یکی از برترین دانشگاه پزشکی در اروپا شناخته می شود. و خبر گرفتن پاسپورت دانمارکی باز هم سخت در می شود. قبولی دنکس دو و سه شرکت در امتحانات پاسپورت دانمارکی سابقه دو سال کار تمام وقت نداشتن سوء سابقه، امضای برگه اعتقاد به سیستم دموکراسی و همچنین تاییدیه پلیس برای اینکه شخص شخص متقاضی برای جامعه دانمارک خطرناک نیست کافی نبود. حالا ناصر خدر نماینده سوریایی تبار مجلس خواهان تصفیه قانونی شده که اگر این قانون به تصفیه نمایندگان مجلس برسد متقاضیان دریافت پاسپورت دانمارکی باید قبل از دریافت پاسپورت با کمیته طرح سوال و در بعضی موارد با نمایندگان مجلس ای داشته باشند و به این سوالات آنها پاسخ دهند سوالات برای مثال از این نوبی باشد برای چه پاسپورت دانمارکی می‌خواهید نظرتون در دموکراسی سنتی برابری بین زن و مرد و جنسگرایان و غیره چیست سپاس فراوان از تماشاگرتون شاد و سروران باشی